فصل سوم یک نفر از فریسیان به نام نیغو که از بزرگان قوم یهود بود یک شب نزد عیسی آمد و به او گفت ای استاد ما می دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده زیرا هیچ کس نمی تواند را که تو می کنی انجام دهد مگر آنکه خدا با او باشد عیسی پاسخ داد یقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. میقودیموس گفت: چطور ممکن است شخص ای از نو متولد شود؟ آیا میتواند باز به رحم مادر خود برگردد و دوباره تولد یابد؟ عیسی پاسخ داد: یقین بدان که هیچ کس نمیتواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آن که از آب و روح تولد یابد. آنچه از جس تولد بیابد جسم است. و آنچه از روح متولد گردد روح است. تعجب نکن که به تو میگویم همه باید دوباره متولد شوند. باد هر جا که بخواهد میوزد. صدای آن را میشنوی اما نمیدانی از کجا می آید یا به کجا می رود؟ حالت کسی هم که از روح خدا متولد می شود همینطور است. نیقو در جواب گفت این چطور ممکن است؟ ایسا گفت آیا تو که یک معلم بزرگ اسرائیل هستی این چیزها را نمی دانی؟ یقین بدان که ما از آنچه می دانیم سخن می گوییم و با آنچه دیده این شهادت می دهیم ولی شما شهادت ما را قبول نمی کنید وقتی درباره امور زمینی سخن می گویم و آن را باور نمی کنید اگر درباره امور آسمانی سخن بگویم چگونه باور خواهید کرد؟ کسی هرگز به با آسمان بالا نرفت مگر آن کس که از آسمان پایین آمد، یعنی پسر انسان که جایش در آسمان است. همانطوری که موسا در بیابان مار برنجی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود، تا هر کس به او ایمان بیاورد صاحب حیات جاودان گردد زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید بلکه تا آنان را نجات بخشد هر کس به او ایمان بیاورد، محکوم نمی شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد، در محکومیت باقی می ماند. زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. حکم محکومیت این است که نور به جهان آمد ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند. زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور متنفر است و از آن دوری می جوید مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود اما شخص نیکوکار به سوی نور میآید، آید تا روشن شود که اعمالش در اتحاد با خدا انجام شده است بعد از آن عیسی با شاگردان خود به سرزمین یهودیه رفت و در آنجا مدتی با آنها مانده تعمید می‌داد. یحییا نیز در عینون نزدیک سالیم به تعمید دادن مشغول بود. در آن ناحیه آب فراوان بود و مردم برای گرفتن تعمید می آمدن زیرا یحیا هنوز به زندان نیفتاده بود. بین شاگردان یحیا و یک نفر یهودی مباحثه‌ای در مورد مسئله تهارت در گرفت. پس آنها نزد یحیی آمده به او گفتن ای استاد آن کسی که در آن طرف اردن با تو بود و تو در باره او شهادت میدادی در اینجا به تعمید دادن مشغول است و همه پیش او میروند یحیی در پاسخ گفت: انسان نمیتواند چیزی جز آنچه خدا به او میبخشد به دست آورد. شما خود شاهد هستید که من گفتم مسیح نیستم. بلکه پیشاپیش او فرستاده شدم عروس به داماد تعلق دارد دوست داماد که در کنار ایستاده و صدای داماد را میشنود لذت میبرد. شادی من هم همینطور کامل شده است او باید پیش شفت کند در حالی که من عقب می روم کسی که از بالا می آید مافوق همه است و کسی که متعلق به این دنیای خاکی باشد آدمی است زمینی و درباره امور دنیاوی سخن میگوید. آن کسی که از آسمان میآید از همه بالاتر است و به آنچه دیده و شنیده از شهادت میدهد اما هیچ کس شهادت او را قبول نمی کند. هر که شهادت او را بپذیرت صداقت و راستی خدا را تصدیق کرده است. کسی که از طرف خدا فرستاده شده است کلام خدا را بیان میکند. زیرا خدا روح خود را بی حد و حسر به او عطا می فرماید. پدر پسر را محبت می کند و همه چیز را به او سپرده هست. آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد. اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود.